اصل دوم بعد از چند روز عیسی به کفرناهوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است عدده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد عد مرد مفلوجی را که وسیله چهار نفر هم میشد نزد او آوردند اما به علت زیادی جمعیت نتوانستن او را پیش عیسی بیاورند پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند وقتی آنجا را باز کردند مرد مفلوج را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردن چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد عیسی فورا فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس با آنها فرمود چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدنید؟ آیا به این مفلوج گفتن؟ گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و توشک خود را بردار و راه برو اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد به آن مفلوج فرمود به تو میگویم برخیز توشک خود را برداشته و به خانه خود برو او برخاست و فورا توشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد، همه بسیار تجب کردند و خدا را هم کنان می ما تا به حال چنین چیزی ندیده ای. بار دیگر ایساب به کنار دریا رفت مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود ایسا به او گفت به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیاری از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند. چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند چرا با باجگیران و خطاکاران غذا میخورند عیسی این را شنید و به آنها فرمود بیماران احتیاج به طبیب دارند نه درستان من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم نه کاران را یک موقع که شاگردان یحیی و فریسیان روزهدار بودند عدهای پیش عیسی آمدند و پرسیدند چرا شاگردان یحییا و فریسیان روزه میگیرند اما شاگردان تو روزه نمیگیرند عیسی به آنها فرمود آیا میتوان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند نه تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمیگیرند اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می شود در آن وقت روزه خواهند گرفت هیچ کس لباس کهنه را با پارچی نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردند و پارگی بدتری به جا همچنین هیچکس شراب تازه را در مشک های کوهنه نمی ریزد. اگر چنین کند شراب مشک را می و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک های نو باید ریخت. در یک روز ثبت عیسی از میان مزارع گندم میگذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشهای گندم کردند. فریسیان به او گفتند: نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست. عیسی فرمود: مگر نخوانده اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را، که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت، خورد و به همراهان خود نیز داد، و به آنها فرمود، ثبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای ثبت بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست،